تفهه پانسد و چهل و دو که اساساً هیچ چیز دیگری را در این قصد جز وجود عزیز عزیزش هم مهار نمیدید و حس میکرد رو به ابن طاهر کرد و گفت من فقط هم را می بینم و وقت من اشیاء زیبایی را که تو تعریف میکنی درک نمی کند. من در شرایط دیگری هستم و وقتی فکر میکنم خلیفه گونه های مرا به گونه هایش می چسباند. از شدت اندوه مرگ برای خود آرزو می کنم. این چه سرنوشتی است که یک ساعت پیش خود را خوشبختترین حس میکردم و اینک بدبختترین مرد عالم من در مقابل حریف نیرومندی قرار گرفتم که قدرت مبارزه با او را ندارم نیروی هم به پایان می رسد و شکیبای خود را از دست داده ام. در این میان چیزی در باغ عبور کرد که او را وادار به سکوت کرد و تمام حواسه او متوجه آن نقطه گردید شاهزاده و ابن تاهر که از سوراخ جای کرید داخل تالار را نگاه می دیدند خلیفه که روی تخت نشسته بود دستور داد بزم آغاز شود و بانوی که عود می نواخ آهنگ مورد علاقه شمس و نهار را شروع به نواختن کرد و شمس و نهار به یاد شاهزاده در احساسات عمیقی فرو رفت خلیفه که از ما خبر بود فکر کرد که به خاطر او دستخش احساسات شده است پس از چند لحظه شاهزاده نهار بیهوش شد و از پوست به زمین افتاد. ندیمه ها و کنیزان به سوی او رفتند و او را به تالار دیگر بردند. چه ساده که از تالار طب به شاهد صحنه بود، او هم در آنجا بیهوش شد و از زمین نقش بست. و ابن طاهر که او را معاینه کرد، حس کرد که قادر به حرکت نیست. در این موقع در باز شد و کنیزی که مخصوص نفس زنان وارد شد و گفت: عجله کنید و دنبال من بیایید تا شما را از قصر خارج کنم. وضع خیلی خراب است و تصور می‌کنم آخرین روزهای زندگی مان است. در این موقع ابن طاهر با صدای بسیار غمالودی گفت: لطفاً بیا جلو ببین با این وضعی ای که شاهزاده دارد چگونه میتوان حرکت کرد؟ کنیزکی که بیهوشی شاهزاده را دید با عجله بیرون رفت تا آبی برای پاشیدن به صورتش بیاورد. بعد از آنکه شاهزاده به هوش آمد ابن طاهر گفت: اگر شتاب نکنیم جان مادر خطر خواهد افتاد. باید به هر ترتیبی فرار کنیم اما شاهساده که رمقی در بدن نداشت با کمک ابن طاهر و کنیزک روی پای ایستاد و آنجا نفر هم دو طرف او را گرفتند و او را, و او را تا در مخفی كه رو روی دجله باز میشد آوردند در آنجا از در خارج شدند و در کنار انشعابی از دجله رسیدند کنیزک مخصوص دستهای خود را بر هم کوفت و بلافاصله قایق کوچکی با یک قایقران نزدیک آنها آمد همینکه که شاهزاده داخل قایق شد، دست راست خود را به سوی قشخه خلیفه دراز کرد و با صدایی ضعیفی گفت: عزیز دل من، عشق عمیق خود را به این وسیله و با این دست به سوی تو می فرستم و با دست دیگر آتش عشق تو را برای همیشه در دل خود گرم و زنده نگه می‌دارم. قایق را هم پاروزنان قایق را از این رودخانه انشعابی به سوی دژ می‌برد و که مخصوص هم در امتداد همین نهر آنها را همراهی می‌کرد. تا قایق به وارد شد کم با آنها خداحافظی کرد و به سوی قصر مراجعت نمود وقت شاهزاده و ابن تاهر از قایق پیاده شدند راه درازی در پیش داشتند تا به خانه های خود برسند ابن تاهر به شاهزاده پیشنهاد کرد راه تو از راه من هم دورتر است با ناتوانی تو و دیر بودن وقت بهتر است به خانه یکی از دوستان من که در همین نزدیکی هاست برویم و شب را تا صبح در آنجا استراحت کنیم برین ترتیب به خانه ی دوست قدیمی رفتند و او هم با خوش رویه تمام به آنها خوش آمد گفت و در آنجا استراحت کردند گشت شاهزاده از فرد خستگی و ضعف جسمانی خوابش برد اما در خواب هم ناراحت بود چون خواب می دید که چمس نهار بیهوش در کنار خلیفه روی زمین نقش بسته است ادمتاهه که نگران خانوادهش بود و سابقه نداشت که شبیرا بی خبر از همسر خود در خارج از خانه به سربرد صبح زود از خواب برخاست و صاحب خانه که برای نماز خزارت بیدار شده بود از او خداحافظی کرد و رفت شاهزاده همچنان خسته و گفته روی مبلی دراز کشیده بود ابن تاهر از خانه خود دوباره به خانه دوستش برگشت و از او خواست اتاقی را برای استراحت شاهزاده ترتیب دهد و از شهستاده خواست را خانه خود بداند و به دوستان شادزاد هم خبر داد که او در کجاست و مشغول استراحت میباشد شانساده هم گفت به این شرط در آنجا میماند که با او بدون تشریفات رفتار کنند به درخواست دوست ابن جاهر شانساده چند روزی را در خانه او به استراحت گذراند و بعد از آنکه به کمک ابن جاهر به خانه خود رفت و خدمتکاران از او پرستاری و پذیرایی کردند تا رفته رفته او به حال عادی برگشت اما همه هش دفعه شمس و نهار بود و حققت ابن تاهر او را دلالت و راهنمایی دل دلسوزانه می کرد و از عاقبت این اشق بیفرجام او را برحضر می کرد فایده ای نداشت شاهزاده در برابر آرهم پنده اندرز فقط می گفت نمی توانم آنی از اشق شمس نهار قافل بمانم من در راه عشق او جال میدهم و با عشق او با این جهان بدرود خواهم گفت از شما میخواهم خواهم که بی توجهی مرا به سخنان خود. نوعی گستاخی یا بیعدوی تصور ننمایی از من آشفت حال انتظار عقل منطق نداشته باش فقط به من بیگویید شمس و نهار در چه حالتی است؟ پاسخ داد دوست بزرگ بار. نگران نباش کنیزک مخصوص حتما در اولین فرصت برای تو پیغا می خواهد آورد فعلا آرام باش و با زنده کردن امید در شاه ساده از او حافظی کرد و به خانه خود رفت و تمام روز در انتظار این بود که خبری از شانس و نهار دریافت دارد سرانجام در پایان روز به دیدن شاهزاده شدافت و در آنجا شاهزاده را دید که همچنان در بستر آرمیده و پزشکانی چند در اطراف او به گفتگو نشستند اما همگی از تشخیص بیماری او عاجز ماندند شاهزاده پزشکان و سایر دوستانش را که برای احوالپرسی آمده بودند مرخص کرد و وقتی تنها شد رو به ابن طاهر کرد و گفت میخبری از سنوشت شسا نهار مرا بیداقت کرده و وقتی اشخاص به دیدن من میآیند و در اینجا جمع میشوند، حالت روحی من بتر می شود دلم میخواهد تنها باشم و آزادانی گریه کنم گرچه می خووشم که راز خود را پنهان نگه دارم ولی اختیار جلوگیری اشهایم را ندارم و خود به خود سراز میشود. من نگرانم که چه بر سر شمس آمده؟ چه اتفاقی افتاده که کنیزک مخصوص تا کنون به سراغ تو نیامده است احساس میکنم خطری متوجه او شده اگر چنین باشد حاضر نیستم ولو یک لحظه بعد از او زنده بمانم این تاهر به ساخنان شاساده با شکی گوش کرد. و سپس گفت من مطمئنم که اون زنده و سالم است اما در وضع کنونی فراغتی به دست نیامده تا کنیزک مخصوص را نزد من بفرستد و امروز حتما پیامی از او دریافت خواهم کرد بعد از عدای سخنان آرامش بخش و امیدوار کارندیه که او گفته بود ابن تاهر از نزد شاهزاده به خانه خود رفت همین که ابن تاهر به خانه خود برگشت کنیزه مخصوص به خانه او آمد در شهره هش آسان نگرانی دیدینی شد ابن تاهر با دیدن او پرسید از بانوی خودت بگو حالش چگونه و در چه, خلیفه چه رفتاری با خلیفه داشته؟ تابزنک گفت اول شما بگویید که بعد از سوار شدن به قایق چه بر سر شاه سادی آمده است ابن طاهر هم بدون درنگ را که از آن لحظه به بعد بر او و شاه ساده گذشته بود برایش بیان کرد آنگاه کنیزک گفت بعد از رفتن شما و شاه ساده به قصر برگشتم خلیفه بالای سر شمس نهار نشسته و مصری و پریشان بود و از همه ندیمه ها و به خصوص از من درباره علت کسالت ناگهانی او و قش کردن او پرتش کرد هیچکس آن راز را فاش نساخت وقتی شمس و نهار به اوش آمد خلیفه خوشحال شد و سپس شمس و نهار پاهای خلیفه را بوسید و گفت سرنوشت نخواست تا من در زیر قدم خلیفه جان خود را فدای محبت خلیفه کنم خلیفه گفت این چه حرفی است میزنی؟ من می‌دانم که تو مرا دوست داری من هم تو را دوست دارم و از تو میخواهم به خاطر من زنده باشی. گرچه سبب حال به هم خوردگی و قش کردن تو را نمیدانم ولی اطمینان دارم امروز در یک چیزی زیاده روی کرد که تو را به این حالت درآورده تا کنون چنین حالتی از تو ندیده بودم ببراین از تو خواهش دارم کاملا مراقب باشی در آینده از آن چیز بهپهیزی تا دوباره گرفتار آثار ناگوار آن نشوی خوشحالم که حالت بهتر شده امشب را در همین تالار استراحت کن بعد هم قیر شراب به شمس و نهار نوشانید تا نیروی به دست آورد. بعد از آن خلیفه به قصد خود مراجعت کرد همین که خلیفه به قصد خود رفت شانس نهار با اشاره سر مرا به سوی خود فراخواند و پرسید چه بر سر شاختاده آمده من هم تمام جریان را برایش بیان کردم اما اشاره در قش کردن او نکردم تا مقادا بانوی من دوباره از هوش برود اما با وجود احتیاطی که کردم او دوباره با خود گفت ای شاهزاده تا زمانی که چشمانم به دیدار تو روشن نشود هر نو لذت و آسایش را برای خود حرام می شمارم من هم در ایامی که در انتظار دیدارت هستم مانند خودت از عشق میریزم و به تو میاندیشم. مانوی من بعد از گفتن این سخنان دوباره بیهوش شد آنگاه من و سایر ندیمه ها مانوی عزیزمان را به هوش آوردیم و زود او درخواست و التماس کردیم که اگر شما به شاهزاده علاقه دارید به خاطر او شده باید خود را زنده و سالم نگه دارید. در حالی که شما با بیسی ها و های خود خود را از بید خواهی برد و در نتیجه هم شما و هم شاستاده از دیدار یکدیگر محروم خواهید شد. علاوه بر شاستاده به فکر من و همین ندیمه ها و کنیزانی دیگر که فدایی تان هستند باشید. بانوی من اظهار داشت از شما خون سپاس خوزارم. ولی این نسایه درد مرا نمیدهد و این آتش سوزان مرا تباه خواهد کرد و تا پای گور همراه من خواهد بود بعد از چند دقیقه شمس نهار همی ندیمه ها را به جز من مرخص کرد و شب را تا صبح به گریه و ناله کردن گذراند و مرتبا شاه ساده را نام میبرد و از بخت بد خود گله می‌کرد که چرا شاهزاده به جای خلیفه نصیب او گشته است روز بعد به دستور خلیفه و با کمک من و سایر ندیمه ها بانوی خود به خوابگاه خودش انتقال دادیم ولی داروی پزشکان موثر واقع نشد چون علت واقعی بیماریش را نمیدانستند و حضور خلیفه هم بر شدت بیماری او افزود بانوی من دیشب را قدری خوابید و همین که حالش بهتر شد از من خواست هرچه زودتر نزد شما بیایم و از شاخزاده برایش خبری ببرم عبنطاهر به كنزک گفت به بانوی بزرگوار بگو شاساده با بی در انتظار پیام شماست او هم در تمام این مدت مانند خود شما نال وزاری می کند و من نتوانستم او را آرام کنم کنزک مخصوص هم گل داد که سخنان او را به آگاهی بالوی خود خواهد رسانید بعد از رفتن کنزک مخصوص ابن به خانه شاهزاده رفت و جریان ملاقات خود را با او در میان گذاشت و به او گفت از کنزک خواهده از تا بیقراری و نال و زاری را. به اطلاع این شمس و نهار برساند شاهزاده از محبت های سمیمانی ابن تشکر کرد و گفت شما آنقدر برای من فداکاری کرده اید که موجود من است و من نمیدانم با چه زبانی قدردانی کنم ابن تاهه در مقابل سخنان شاهزاده گفت خواهش می با من این گونه سخن نگویید من شما را واقعا دوست دارم و حاضرم هر دو چشم خود را به خاطر حفظ یک چشم شما بدهم و برای رهایی و حفظ جان شما جانم را فدا کنم. آن شب را تا دیر وقت شاهزاده و ابن طاهر به گفتگو گذراندند و ابن طاهر شب را هم در خانه شاهزاده به سر برد. صبح که به خانه خود مراجعه کرد، بعد از چند لحظه کنیزکی که مخصوص به خانه او آمد و گفت: بانوی من به شما درود فرستاد و از شما خواهش کرد این نامه را که برای شاهزاده نوشته است به او تسلیم دارید. ابن ظاهر نامه را گرفت و به اتفاق کنزک به خانه شاهزاده رفت. ابن ظاهر به خانه شاهزاده وارد شد. کنزک مخصوص را در اتاق انتظار نشانید و خود نزد شاهزاده رفت و گفت: خبر خوشی دارم. شمس و نهار برای نامه فرستاده و حامل نامه در آن اتاق منتظر است تا اجازه ورود به او بدهید. کنیزک بلافاصله با اجازه شاهزاده به اتاق وارد شد. شاهزاده که او را شناخت با گرمی و مهربانی از او استقبال کرد. تنزیق احترام شایانی به شاهزاده کرد و گفت نگران حالتان بودم خدا را شو که بعد از سوار شدن به قایق به سلامتی به خانه رسیدید و خوشحالم که نامه بانوی خود را تقدیم کنم تا با خواندن آن آرامشی پیدا کنید آنگاه نامه را معدبانه به شاهزاده تسلیم کرد شاهزاده هم نامه را گرفت و بعد از چند بار بوسیدن آن را گشود و در نامه چنین آمده بود کسی که این نامه را تقدیم وجود عزیت می کند بهتر از من میتواند شرح حال مرا بیان کند زیرا خودم از لحظه ای که تو را دیدم از خود بیخبر شده ام چراغ تو مرا واداشت این نامه را بنویسم و چون مخاطب نام تو هستی در نوشتن آن هم همان لذت دی دارد نصیبم خواهد شد میگویند صبر چاره ساز هر دردی است گرچه تلخ است ولی سرانجام بر شیرین به بار می آورد اما برای من جز ترخامی چیزی به همراه نیاورده است گرچه سیمای زیبایت در لوح من گوش است ولی میدانم چشمانم به دیدار تو روشن شوند زیرا چنانچه مدتی تو را نبینم چشمانم بینای خود را از دست خواهند داد آیا میتوانم به خود این نوید و دلخوشی را بدهم که تو نیست همین احساس را درباره من داری این اندشه و احساسی را که انگشتان من بر روی کاغذ پدیدار می سازند، با شادمانی بسیار همراه است. زیرا از احماق قلب و هم سرچشمه می قلبی که با تیر عشق تو جراحت درمان برداشته است. زخمی که با وجود شکنجه‌هایش هزاران بار آن را ستایش میکنم. دوری از تو مرا رنج می‌دهد. با این احوال اگر می آزادان تو را ببینم همه موانع اون مشکلات را هیچ می زیرا آن وقت لذت با تو بودن همه ی را شینین می‌کرد. مگر غیر از این آرزویی هم داشتم. آنچه بر روی کاغذ می‌بینی، تراوش احساسات درون است. افسوس که قلم وجد کافی در بیان واقع را ندارد. دیدگان امیدوار و در انتظارم هموار عشق می‌ریزند. قلب مجروحم که فقط تو را می‌خواهد، آههای سردم که هر بار بی اختیار از دل پردردم خارج می‌شوند. و نیروی تصورم که جز شاهزاده عزیزم کسی دیگری را در خود نمی گنجاند و شکفه های مسترنوشت ناسازگار و به طور خلاصه رنج و ای که از لحظه دیدار تو آسایش و راحت را از من را بوده است همه و همه گواهی بردرستی سوز و گدازهای من می دهند آیا بدبختی از این بالاتر که انسان آشق کسی باشد که دسترسی به وجود او را ندارد؟ با این واسه هراین تو هم مرا دوست نمی‌داشتی آن وقت مرگ من حتمی بود این اندیشه مشقتبار مرا رنج می می‌دهد ولی اتکای آرامش بخش به عشق تو نومیدی را برطرف میسازد و نوید زندگی می‌دهد و نهال عشق را در دلم آبیاری می‌کند به من بگوی که همیشه دوستم خواهی داشت من مانامه تو را در جای مطمئنی حفظ خواهم کرد و روزی هزاران بار آن را خواهم خواند من سوز و گداز عشق تو را با شکیبی کمتری میپذیرم و این تب و مطبوع را بر خود هموار میکنم و از خداوند میخواهم که با من و تو بر سر مهر آید و فرصتی پیشآورد تا آزادانه به یکدیگر بگوییم همدیگر را دوست داریم و از اشق یکدیگر دست نخواهیم برداشت خدا نگهدار تو باد درودهایم را به ابن طاهر برسان که ما هر دو مدیون او هستیم شاهزاده سه بار پیاپی نامه مشوق را خواند و هر بار گاهی آه می کشید و قصه‌ی اشک بر یگونه اش می‌قضید و گاهی هم شاد میشد و از دیدار خط عشق خود غرق لذت گردید ولی در تمام مدت و یک لحظه هم چشم خود خودا از کلمات نامه که با دستهای زیبا و لطیف شمس و نهار نوشته شده بود بر نمی‌داشت شاهزاده به تنیزه گفت باید صبر کنین تا من هم پاسخ نامی بانوی بزرگوار تو را بنویسم. نامی شمس و نهار به دست ابن تاهر داد و خواهش کرد آن را مقابل او نگه دارد تا پاسخ آن را بنویسد. نامی آن بانوی مهبان زمانی به من رسید که از شدت اندوه و نومیدی در آستانه نابودی بودم. کلمات و عبارات دلنشین شما چشمم را روشن و دل کار اندوه هم را شادی بخشید. سخنان از دن برخواسته شما تاریخی و سردی اندوه را که بر قلب رو هم سنگینی میکرد به یک بار زدود و نور امید و شادمانی سراسر قلبم را روشن ساخت. از نامه شما برنج که از عشق من در دل دارید پی بردم و فهمیدم شما نیز از رنج و سوز دل من آگاهید. این عشق سوزان از یک سو با شونه های جانسوزش آتش بر جانم میزند و از سوی دیگر نمیگذارد اندوه قصه مرا از پای در آورد. از لحظه ای که بیرحمان مرا از شما جدا ساختند تا این لحظه آرام نداشته ام نامی شما مرهمی بر این دل ریش بود و نیروی تازهی به من بخشید تا از سکوت و افسردگی سردگی اندوخ بار درایم. شما دلم را روشنی داد و نور امید در آن پرت و افکن شد نمیدانم با چه بیانی از آن همه مهر و بزرگواری سپاس گویم و نامی شفا بخش شما را بارها و بارها خواندم، و محبت شما را در قلب خود لمس کردم. خود را مرهون شما میدانم و از آن همه عشق و محبت از صمیم قلب سپاسگزاری می‌کنم. من عاشقانه شما را دوست میدارم و افتخار می‌کنم که آتش عشق شما قلب مرا همواره روشن نگه می‌داد و روزهای زندگی مرا با امیدواری همراه می‌سازد. شما زندگی و جان به من میبخشید و شما روح و روان من هستید. پس چگونه میتوان دور از روح و زندگی زنده باقی ماند اندوه و فشار دور بودن از وجود عزیز شما برایم تا قاصفرسا و کشنده است با این همه در کمال شجاعت این شکنجه ها و دردها را تحمل می کنم به این امید که دیر یا زود شما را زیارت کنم اگر امکان داشت که امروز شما را ببینم با شادی بسیار به دیدن شما می آمدم تا جان خود را فدا کنم گریه اجازه نمی دهد ده که پیش از این بنویسم خدا نگهدارتان باشد شاهزاده نامه را نوشت و به دست کنیزک مخصوص داد کنیزک هم خداحافظی کرد و رفت ابن ظاهر که در این حال مرد عاقل و نگری بود با خود فکر می کرد که شاهزاده و, و نهار با همه های خود دیر یا زود راز خود را از پرده بیرون می گذارند و نخستین کسی که قربانی خشم خلیفه خواهد شد شمس و نهار و بعد از او شاهزاده و نفر سوم هم خود او خواهد بود که باید به فکر عاقبت خانواده و زندگی و از همه مهمتر آبرو و شهرت خودش باشد بنابراین به نصیحت شاساد پرداخت و از آقابت شوم این رابطه او را آگاه ساخت این بار هم شاهزاده مقاومت کرد و گفت در جایی که شمس نهار حاضر است به خاطر من جان خود را به خطر اندازد آیا درست است که من به فکر جان خود باشم من باید تا واپسیندم به عشق خود وفادار و پایدار باقی بمانم جان من در برابر او ارزشی ندارد ابن تاهر بعد از شنیدن سخن نشاساته به او گفت بهتر از شجاعت و بیباکی خود در راه سرکوبی این عشق استفاده کنی تا اینکه بر خود این همه آزار رنج روا و زندگی شیرین را تخت کنی و جان نامی را به خطر اندازی باید تمام تلاش برای پیروزی بر عشق خود بخواه ببری و اگر غیر از این کنی و شکست را نپذیری. در راه نابودی خود و شمس و نهار گام برداشته ای که تازه جان او را باید عزیزتر از جان خودت بدانی من به عنوان یک دوست واقعی این سخنان را به تو میگویم و میدانم روزی قدر سخنان مرا خواهی دانست ابن طاحت به خانه خود بازگشت و از سر سختی شاه ساده در مقابل خود و پایداری او در عشق به شمس و نهار سخت میترسید و احساس خطر می کرد. و در گفتگوی خود با شاهزاده می اندیشید در همان لحظات یکی از دوستان قدیمی او که جواهر فروش بود به خانه ابتجاه وارد شد و در ضمن گفتگو از او پرسید چرا این روزها کنیزک مخصوص شمس نهار بیش از همه نزد تو می آید و شاهزاده ای ایرانی هم دائما در دکان تو دیده می شود از طرفی شاهزاده اخیرا بیمار شده است و همه ای مطالب را میدانند ولی علت برانان پوشیده است ابن تاهر از سخنان جواهر فروش حد زد که او باید بویی از رابطه شمسونده ها رو برده باشد و به فکر فرو رفت. جواهر فروش از به فکر فرو رفتن ابن تاهر به این نتیجه رسید که ابن تاهر به موضوع مهمی فکر می کند و از رفته آمده کنیزک مخصوص آگاهی دارد و بلافاصله سبب را از او جویا شد. ابن تاهر که کاملا قافلگیر شده و می‌خواست پرده پوشی کند گفت کنیزک برای انجام کار غیر مهمی نزد من میآید جواه فروش گفت پس تو خیان نداری حقیقت را به من بگویی و از پاسخ تو فهمیدم که موضوع به مراتب مهمتر از آن است که در ابتدا فکر میکردم. ابن تاهیر که فهمید زیر فشار جواه فروش قرار گرفته گفت همینطور است که میگویی موضوع بسیار مهم است. من میخواستم آن را همچنان پنهان نگه دارم ولی از آنجا که تو دوست قدیمی و هستی محرمانه به تو میگویم تا تصورات بیهوده نکنی اما باید این راز را در پرده نگه داری. بعد از این مقدمه رابطه‌ی عشقی شمس و نهار را شاهزاده را تعریف کرد و گفت تو میدانی که من چقدر مورد احترام درباریان و اهالی این شهرم اگر روزی این راز آشکار شود چه عواقبی برای من خواهد داشت مسلما من و خانواده‌ام نابود خواهیم شد من هرچه زودتر به امور مالی و کسبی خود سر می میدهم و روانه بسته میشمم آنجا میمانم تا آبها از آسیا بریزد من برای شمس ها رو شاساده بسیار نگرانم خدا کند آنها دو سر عقب بیایند و متوجه خطرات آن بشوند چنانچه راز آنها فاش و خلیفه از آن آگاه شود و از بسیار خطرناک میشود اگر شاهزاده هم مثل من بقداد را ترک کند دوری از بغداد و ندیدن شمس و نهار رفته رفت موجب فروکش کردن شعله های سوزان عشق می شود. در حالی که ادامه دیدار آن دو عشقشان را تون خواهد کرد جواه فروش بعد از شنیدن سخنان ابن طاهر مبهود شد و گفت موضوع بی نهایت مهم است و من تعجب می‌کنم چگونه شاساده و شمس و نهار جرأت کردن که خود را درگیری چنین خطری کنند آنها باید از عقل خود پیروی میکردند و تسلیم هوا و هوس خود نمی و در برابر آن ایستادگی میکردند. فکر می کنی آنها عواقب ناخوشایند آن را هرگز نسنجیده باشند. آنها چشبسته تصمیم عشق شدند. آنچه را تو در عاقبت کار گفتی درست است با تو موافقم. تصمیم رفتن از بغداد و اقامت در بسره هم کاملا آقلانه است. جواهر فروش این سخنان را گفت و از ابن تاهر خداها کرد دو روز بعد از آن جواهر فروش دکان ابن تاهر را بسته یافت و فهمید که او به بسته رفته است آنگاه با خود گفت حال که ابن تاهر در اینجا نیست رابطه بین آن دو عاشق چه کسی خواهد بود وای به شاهزاده خدا می داند وقتی از مسافرت ابن تاهر با خبر شود تا چه اندازه ناراحت خواهد شد بیچاره شاهزاده خدا کمکش کند می از قصد دق کنند. دلم برای او می‌سوزد. من به جای ابن جاهر به یاری او خواهم رفت جواهر فروش زیاد با شاهزاده نزدیک نبود فقط چند بار جواهراتی به او فروخته بود با وجود این دلش طاقت نیاورد و یکسر به خانه او رفت خدمتگان حضور او را به آگاهی شاهزاده رسانید و اجازه ورود جواهر فروش را گرفت آنگاه جواهر فروش به شاهزاده درود گفت اشا استاد با خوشرویی و ادب به او خوشامد گفت وو درخواست کرد در بنشیند و پرسید چه خدمتی می تواند برای او انجام دهد. جواهر فروش گفت: اگرچه ما زیاد دیگر را نمی ولی برای اثبات علاقه و احترام خودم نسبت به شما خدمت رسیدم تا درباره مطلبی که مربوط به شماست گفتگو کنم. بعد از این مقدمه جواهر فروش وارد موضوع شد و چنین ادامه داد ای شاهزاده مدتهاست که به واسطه توافق اخلاقی و عوامل پیوندهنده دیگر من و ابن طاهر دوستی نزدیک و یگانگی با یکدیگر داریم و هیچ رازی را از هم پنهان کنیم او راز شما را برایم بیان کرد و دیروز که مغازه او را بسته دیدم علت از همسایگانش جویا شدم آنها گفتند که برای یک کار بسیار مهمی به بسته رفته و معلوم نیست چه وقت مراجعه خواهد کرد من خدمت شما که از نزدیکان او هستید آمدم تا بپرسم چرا ابن طاهر به طور ناگهانی دست به این سفر زد ساخران جواهر فروش صفب شد رنگ از رخ شاهزاده زدود شود. و خبر سفر رفتن ابن طاهر چون سائقهی برپیکر او فرود آمد قبض از چهرهاش میبارید آنگاه رو به جواهرفروش فروش کرد و گفت بخترین خبری بود که به من دادید در حالی که عشق از چشمانش سرازی شده بود گفت او تکیه گاه من بود فکر نمی‌کنم طاقت تحملی چنین ضربه جانفرسایی را داشته باشم شاهزاده یکی از خدمتکاران خود را صدا زد و گفت سریعا به خانه او برو و از خدمتکارانش بپرس که او به وصیت رفته یا نه و نتیجه را به من خبر بده وقتی خدمتکار شاهزاده دنبال مأموریت خود رفت جواهه فروش کوشش کرد با صحبتهای قورغون او را سرگرم کند ولی شاهزاده اصلا توجهی نکرد و در حالت بیم و امید گاهی مطمئن شد ابن طاهر رفته و لحظه بعد با ناواوری روبرو شد ولی سیمای ابن طاهر را به نظر میآورد که در آخرین بار با ناخوشنودی از او جدا شده بود زیرا به اندرسای او بیاعتنایی کرده بود سرانجام خدمتگار مراجعت کرد و به آگاهی شاهزاده رسانید که ابن ابنطاهر دو روز پیش به بسره رفته خدمتگار صحبت گفت همین که از منزل او بیرون آمدم، کنیزکی از من سراغ گرفت که آیا من افتخار خدمتگزاری شما را دارم؟ وقتی گفتم از خدمتکارانم همراه من آورد و اینک در اتاق انتظار نشسته و کاغذی هم آورده که به شما بدهد. شاهزاده با خوشحالی گفت: بگویید بیاید تو. بلافاصله کنیز مخصوص وارد شد و ادای احترام کرد و شاهزاده هم خوش آمد گفت. جواه فروش که قبلا او را دیده بود، چنانک و برای آنکی او بتواند به راحتی پیام خود را به شاهزاده دهد، از جای برخاست و به اتاق مجاور رفت. بعد از آنکی گفتگو، کلیزک اجازه مرخصی گرفت و رفت. شاهزاده آسایش